at home البته ندا کردن و سیدام کردن با عداد خاصی مستشید با عداد خاصی مستشید منطقا که در مدیم عدود و سیدن عدود و سیدن منادا چه با عدود تصمیم آدم به با عداد مخصوصیم منادا همجینی با عداد مخصوصیم عل و وحوبل مدن به تحریم هم پردید و هو و های آنها علمان و شده به او حیا و, و همون ما محل, محل, محل بود یعنی محل بود منادای این کلمات مدعوب میشه با حیاب و حیاب و حیاب و آ محل بود بشهد یعنی که چی باشه منادای ما باشه برای منادای ویش باشه محل اونا ال جای و با ها پس اینکه گروهه، بدون بدون داره یه مثال مثلاً ولادت آن اگر ما میشه برستان قاهره تو بود که یا مناددا یا دوره، بودی که نزدیکطور مح میور مع وقتی با کتاب به کتاب ادایی یاد باش برای ندای ق ا را حرف برای ندای ایا و حیا برای متوازده برای و بیا مطلبای که به این سوشت حال شرط از این شرط منادا شدن منادا زا خیلی ها بایدن یا او درمی شه اسم اونه میشن از ما این من مجرم از ما او برده حیدیو درمی از ما او برده حیدیو درمی یا درمی از ما از ما خونه اله حدید یا زنی که بگید خونه نمیشه بزرگشو در یا بود از گشتر او از اون پس در بعضی از یا انده یا انده در یه سیران نه میدیم یعنی لم یعنی که ما به قاعده و قاعده درست شدن این چیه؟ و قابل است که لال محضور زیگه پس اگر شماییم و یاهنده دارون قاعد محضرین که یاهنده که رسیده چه بکنیم؟ شما که میگه استثاغه اون آدمی میشه. که بله اگر یا بگیدیم اینه هنده که بعد از یاقا بگیده و گفت شده همه قابل تر زیده که ما بتوییم روش کار کنیم باید رو رو باید رو پس بنابراین این هم باید استفاده و خلق بگو انضام شرط بعدی خلق بگو از بزرگو نمیدوشتر از اینجور و شرط شده خان بودن منادا از چی؟ از علف و و بناره خودش اگه در هر اینجا یاد از عرب، دریفت با الانام بناره همگر مگر در لفت جلاله الله در لفت جلاله الله یا از الله یا با الله در و از باید لفظ که اگر همزه علم باید در در کلام چیه جایدر در لفظه همزه بست همزه بست همون با پس بنابراین این خروفش همینا ازا نه از زکیر کنان نه در جا که ما دیدیم از اشعار چطور یا جا بر سر موضوعی در, در که اون موضوع دارایه یا و صلاحو و اگر شما گلتی است گلتی چه یعنی چی یعنی یعنی استعمال شده اما قانونی بکید. مورده یعنی هم خلاف استعمال داره اگزاً استعمال نمیشه شازن استعمال شده و همین که خلاف یاسه یاسه که و شاز یعنی استعمال و استعمال پس بروری قوته از این به استعماله بگیم یعنی یعنی موافق اسکه ما رنگ و مقالبه چیه مقالبه ما سر و مقالبه نیاز با یا جهد از مناوریم مقالبه ما و یعنی خب حالا میگه فقط یوف و خیلی وقت بر اثر فعل وقت هر کننده دا و ما نگاه و فعلی حرف ندا از حرف ندا هر هر فقط هر ما حرف ندا همه جا هست در بعض مثلا در جوز حرف همه شده. شده یعنی یا گروه ما اسم جنت مگر با اسم نیست مثلا دار رجب که یا رجب یا آه. و ها هیچ یا هست پس با اسم جن یعنی اسم نکره هست یکی از که یا باشند ولی با اسمی که مورد ندبه واقع شد. با دی با, با, با دل دل دل دل و آخرشان خواهی سعید با اسم مندوب هم کلمه وا یا کلمه یا که در روز کلمه ها در قابل هست نطبه مورد قبوله و مورد نیاز با هست و درده و رو از دست نظر با نطبه هست ولی مستقاست با اسم جنس هم هست نمیشه چون اسم جنس به دو کم بیاد نکلیده. کامل یا منادا باید حرفش نمیشه چون ولیه که با مستقاس یادتون هستش که گفتیم ما یک منادایی داریم به اسم منادای مستقاس با لام کنم هستیم یاد از به لام مفتوله در این یادی که با منادای مستقاس هم میاد قابل هست به همون جدیلی که چون در مستقاس دادیه هر یه ده هست و اسم اشاره اسم اشاره اگر منادا باقی شد مثل یاهازا یاهولاد قابل هست چون اسم اشارم مطمئن است و لفظی لفظ جلاله در لفظ جلاله هم یا حرف نگاه قابل هست بگیم. اگر ما قرار یا, یا الله یا الله یا الله یا الله ال هست اما یا الله و الله و الله الله, الله،, الله،, الله گفت قابل هست؟ من لفظه ما می. ما می. این من عدم ایلوی من عدم به وجود نراش در لفظه الله از در الله اینه که به در میاد یا یعنی. میشه؟ برزه الله ها از نفس جلاله در صورت که نیم نباشر مثال بزن یا چشم نهو و یا زدگاه این مال داره و دیگه دام نداره و بعد از علف پایه بروشو اینجا از این ود علم یک بخص جدیدی رو شروع بکنه که دو علمی ها به علمه به ابن بین علمه این مثل حسن ابن علی حسن ابن علی الان ابن بابا شده بینه چی؟ بین حسن و ابن بین دو باب الان اگر بود مثلا یا حسن ابن علي ما بکنیم بخونی؟ یا حسن نو ابن علي یا حسن, نو ابن یا يا حسن نو ابن یا نه یا علی ابن چی بکنیم بکنیم ها یا علي یا نه محمد یا حالا ممکن است ابن باشه، باشه. یا فاطمه تو ابنته خدیجه. حالا چطور؟ ابنته فاطمه. که ابن در بین دو تا علم شد شده. چطور؟ اینو می‌تونیم علم یعنی چیز؟ یعنی علمی که موضاق نیست شهر موضاق نیست علمی مفردی که موضوب شده علم مفردی که موضوب شده به عبد ابن یا عبد یا حسن یا باطنه خب معلومه برای حسن با چه سفتی بیاری؟ عبد نمزه شدیجا بینید و در دومی هم یا بازمت رو اب حالا علمی که مفرد بود و موضوع به اب یا اب نه شد ابن و ابنهی که مضافن مضافن سبته چی؟ حال از برای ابن ایب علم آخر در حالی که ابن و اضافه شده به سوی چی؟ یک علم دیگری حالا اونجا ابن ایب اضافه بکنی به چی؟ یا حسن ابن یا فاطمت تو، ابنت و یا محمد. پس شد که مفرده یعنی الله مثل حسن و فاطمه مفرده به واقع شده یعنی بعدش ابن و ابن مباده. اون حسن هست مفاتله و این ابن و ابن در آنه اضافه شده به توی یعنی افن بین دوتا حلم قانون اینجا حسن ها. اگر صفتشو در نظر ما شده من من یا حسن و یا بادمند یا حسن و یا بادمانش. بعد صفت. صفت منادا اگر موضاق باشه باید من صفت باشه پس ابن علیه ابن تا خدیجه ابن تا محمد صفت منادا اگر موضاق بود قانونش چیه بگیری من خواهی مرد پس طبق قانون اولیه ما باید چیه رو بیارم یا <تصفيق> حسن نبن علیه یا حسن طب علیه یا فاطمه طب ده تر جایز شما حسن و فاطمه رو برفت هم بگیم چه چون یا حسنب نه حریده یا فاطمه نه دمو یعنی چایز با این کار بخونده. پس ابن بین و لحرمین رو چون بخونیم؟ خود ابن رو منصوب بار چرا تو علن که منادام شده در اون چقدر جایده؟ دوبار مقمی بر زم تقوانه اولش مقمی بر به خاطر میگه علن که مفرد است و مفتوب است به نه در که اضافه شده به دیگر یختار و فرد اختیار می شود خاطر بعد در خواهدیم جاره از سقوط سقوطه زندگی جختار رو برخواهدیم نحوزید رو بخونم یا سید نه همزه این مباق دقیق و میتونم اگه دقیق دقیق نه همزه و نه یا سید دب نه همزه خوش اخفا این مبخصمم تمام hava sebebiyle